با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و موجیان عزیز تلویزیون رنگی کمان امروز روز میخواهیم بخشیم بیستم زندگانی کسدی رو شروع کنیم در بخش نوسته م مطالب خیلی مهمی گذشت برای کسدی و ما همه اینا رو تا اونجا که مقدور بودیم صحبت کردیم مطلب اینجوری بود که زمین های را که وقف امام رضا بود رضا شاه به خاطر اینکه پادشاه نماینده وقت های حرم امام رضا هست میخواست این منطقه رو از دست کسانی که در اونجا کشن رو زرمی بگیره یک مولایی هم که از خالصی زاده اسمش بود از اراخ که از شوی میگه به بهانه اخراج شدنش اومده بود در تهران اینم گرفته بود بر اینکه مسائل شرعی رو حل کنه و زمنها رو گرفته بود اینها هم رفته بودن شکایت کرده بودن گفتیم که در این تاریخ در همین حوالی کسری به رئیس محاکم بدایت انتخاب میشه و این پرورده میاد سر نزیر دستش پس از مطالعه پرونده متوجه میشه که حق با تشاورزانه و بلند میشه مشکلی جا بود که کسی جرأت نمیکرد این مطلب رو مطرح کنه و حتی این درخواست دربار رو رد کنه ولی کس که من بلند شدم یک مأمور اجرا هم با خودم برداشتم رفتم این در اونجا باز دادم تا خلاف این درخواست دربار رو صادر میکنه و کشابرسان رو صاحب زمین میکنه دوباره در این مدت فردای آن روز تیموتاش که رو به دربار دعوت میکنه و شروع میکنه گله کردن که شما چه کاری بود بر علیه دربار کردید و این جواب میده به تیموتاش که گازی مستقله تیمورتاش جواب میده که نه بابا قاضی کجا مستقله قاضی کارمند شما هم دارید حرف چتیارو میزنید کشوری یک بار دیگه در اونجا به آقای تیمورتاش میگه که نه قربان طبق قانون قاضی مستقله و به دنبال آن این مطلب رو با تیمورتاش مطرح میکنه که من یادداشت کردم مینویسه که این کشاورزان زمین ها را آباد دارند. ریشه بر روی زمین می‌دارند، درخت‌های درخت های خانه‌ها می خانه ها ساختند دربار هر کاری که می کند باید به ریشه و درخت و خانه آنها را بپردازد سپس اضافه می کند. همه چیز به کنار این چه صورتی دارد که یک دست کشاورزان و رنجبران به نام این که شاه و دربار به آنها ظلم کرده در شهر بگردند و همه جا ناله کنند و در همه جا گفته شود بروید و عدلیه در عدلیه هم به ظلمشان گوش نداده محکومشان کنند و باز آیا این به آبروی دولت بر نمیخورد؟ کس از بیان این مطلب از تین تاشت خدا میشه و برمیگرده به دفترش حالا همون روز لافرداش حکمی میاد از طرف مزاریت دربار کسردی رو منتظر خدمت میکنند این مملکت ما همیشه اینجوری بوده حرف حق گران تمام میشه کسردی حرف حق زده بود کسردی وقتی حکمه انتظار خدمتش را میبند فرازانه در زیر حکم مینویسد خدمت در انتظار من باشد در سال 1309 و از این تاریخ خدمت کستری در وزارت عدلیه تمام میشود و از این باقت بنده ارز کردم که این بحث بحث مهمی بود تا این تاریخ 1309 که کستری در عدلیه هست بیاناتی که من حضورتون رسم می‌کردم پایش خاطرات خود خودکسلی بود پایش سخنان خودکسلی ولی کشوی تا از این تاریخ به بعد یعنی 1300 به بعد به مدت 15 سال یعنی در هزار و اسفند ماه 1624 کشوی رو کشتم به مدت 15 سال خاطراتش رو ننمیشتم و کسی اگر بخواد درباره کسلی بررسی کند، قاعدتا مجبوره که یا در این مقطع مطلب رو تمام کنه و یا اینکه ادامه بده و چگونه ادامه بده، کسلی از این تاریخ به بعد هفتاد جلد بلکه بیشتر کتابو مطلب نمیشه. دو تا نشستیه بزرگ هم همیشه مطالبش رو خودش نوشت پیمان و پرچم بنابراین برای شناخت زندگانی کستوی و تحولات فکری او که می رفت به یه مرحله عالی برسه ما کافیست که کتاب و مطالب او را در این دوتا مطالعه کنیم و ببینیم چی قدم به قدم کستوی پیش میره. کتاب‌ها رو مطالبی که در نشیاتش نوشته میتونیم بررسی کنیم بررسی اجتماعی بررسی رموشناسی و بعد نتیجه بگیریم که تحولات فکری کسری چطوری بود زندگانیش چطوری گذشت و ما این کارو شروع کردیم انجام دادن و از این تاریخ و از بخش بیستم کسری رو از روی نوشته هاش بررسی کنیم ولی قبل از شروع کردن به این مهم لازم میدانم که نوشته هایی که بنده اشاره کردم به طور خداسه نوشته های مهم میگو مطرح کنم در اینجا؟ چون همه رو اگه مطرح کنم زمان میگذره فرصت کافی نداریم ولی در طول بخش های آینده آنجا که باز مجبوریم که افکار کسردی رو تحولات فکری کسردی رو از روی نوشته هاش بررسی کنیم به اون کتاب‌های مهمی که در این مورد مؤثر هستند اشاره خواهیم کرد و بنده کتاب‌ها رو خدمت نشان خواهم داد ولی تعلیفاتی که کسری در این زمان انجام داده کسری از سال 1309 به بعد متأدبی نوشته در سال 1309 کتاب تاریخچه شیر و خورشید ایران در بخش‌های دیگه نشون دادند بخش دو کتاب شهر یاران گمنام و نیز بخش دو کتاب نام شهرها و ها را منتشر کرد این در سال 1609. در سال 1311 و 12 کتاب مهم آئین را منتشر کرد در دو بخش نشییه پیمان در اول آذر 1312 قای بزاری شد و تا سال 1321 ادامه داشت این روزنامه در شش ماه نقص از روز یک بار منتشر می‌شد و پس از این تاریخ هر ماه منتشر می‌شد شد یعنی ماهنامه بجا اینکه بگیم روزنامه در همین سال کتاب فوروار تاریخ ۱۵۰ سالگی خوزستان رو در همان سال بین 1300 و 1312 یا 11 و 12 تاریخ پانست ساده خوزستان را منتشر کرد و سپس جزبه خاندگری را منتشر نمید این تاریخ پانست ساده خوزستان را در وقتهای گذشته بیان کردیم که کسوی در ماموریت خودش در خوزستان مطالب را آماده کرده بود و پس از فراغت کتاب بسیار معتبر را به چاپ رسانده در همین سال مقدمه بر افافنامه در سال 1313 نمیشد این افافنامه خواهم گفت که یک شعر دیست و بود در مورد زن و به ما این مقدمه مسیر فکری کسدوی رو در اون تاریخ نشان میده و به همین دلیل اینجا رو من انتخاب کردم در همان سال که سری کتاب معروف تاریخ 18 ساله‌ی آذربایجان را شروع کردن این کتاب در حقیقت فرهنگی است در مورد مشروطیتی که در آذربایجان گذشته مردم آذربایجان از در مرکز مشروطیت قرار داشتند و یکی از مراکز مبارسات مشروطیت بود و اگر این کتاب نبود ما حالا از اغلب این مسائل یه ای خبر بودیم که کسری درست نوشتیم در سال 1315 کسری گلچینی از کتاب پلوتاخ را در دو جلد منتشر کرد کتاب معروف تاریخ مشروطیت ایران در بین سالهای 1319 تا 21 نوشته شد این دو جلد کتاب تاریخ 18 ساله ی آزربایجان و تاریخ مشروطه ی ایران مکمل یکدیگرند و این کتاب دومی هم یک انسیکلوپدیه یک فرهنگی است در مورد تاریخ مشروطیت که بسیاری از زبایای مشروطیت را رو روشن میکند در سال 1316 کتاب راه رستگاری رو نوشته که باز ما در آینده به این کتاب اشاره خواهیم کرد تا افکار کسزوی رو بررسی کنیم ببینیم آیا فکر کسزوی در این چارچوب محیطی که زندگی کرد تا چه اندازه متحول شده است کتاب ما چه می رو در سال 1319 منتشر کرد. که این عبارت از برسی از مقالات روزنامه پیمانه که به هم جمع کرد و افکار خودش رو در اون مطرح کرد که من تی میخوا. در سال 1320 به سلا جزوه میتونیم بگیم کتاب میتونیم بگیم که دنبالی یه سخنرانی هاش بود جمع کردن و که نام این جزوه رو امروز که باید کرد گذاشتند و به جا گذاشتن شاه از مملکت رفته. فرزندش محمد رزا شاه به نشسته. مملکت بلبشوه. در عین حال گرفتار قواه بیگانه است. و کس در این تاریخ به فکر چاره است. میگه ما چه از سال سال 1121 نیست کتابی به نام پیامی به دانشمندان اروپا و آمریکا رو تمام کرد جالب است که در از سال 1322 اول سال 1222 تا 20 اسفند ماه 1324 حدود 3 سال که روز قتل زمان قتل کسوی است کسوی اون که که من یاد داشت کردم اینجا 49 کتاب منتشر کرده است و تمام این کتاب ها در چهار شوب فریاد کسدیست در مرکز جامعه بر سر مشکل آفرینانی که در مملکت پیش آمده بود در چهار سال که ما به در بخش های آینده خواهیم رسید از این لحظه به بعد بنده در مورد مبارزات اصلاح‌گرایی کسری مرتضوی رو به عنوان یک اصلاح‌گرا خیلی معروف می‌شناسم. کسی رو با صراحت ندارم در این حد. به اصلاح‌گرایی به پردازد و جان خودشون در اونجا. از بس از این تاریخ به بعد ما در بسلاح به مبارزات اصلاح‌گرایی کسری از روی نوشتارش و بیاناتشون پرداسیم بنده میگم به طوری که در گذشته گفتم متحاله این هم خیلی مهمه به این دلیل که کسری فرزند محیط ارتجاو و فخر و ستم بود او که از عوائل زندگیش تصویر و فساد و خرافات محیط ملایی را با رگ و بوستش کرده بود تصویر و سجاده را به کناری نهاده و تا آخرین لحظه زندگانیش بر علیه محیط آلوده روحانیت و بقیه محیط ها فریاد سرداد و با انتخاب حرف قضاوت با نابرابری ها و ناانصافی ها و حق های محیط عبدیگه آشنا گردید این حرف تجربه پرباری بود که از را به مرحله اصلاحگرایی و ارشاد کل جامعه رحممون کرد و همانطوری که دیدیم در و دو... روان وی شد در آخرین دوره خدمتش در ادلیهک هشده ماه طول کشید با پرونده های حقوقی و جنایی آشنا گردید و به اینکان یک قاضی قدرتمند در محاکم قضایی خود رو سرداد و عملاً با فساد و ناهنجاری های جامعه به مبارزه پرداخت این پرونده هایی که کسدری قدرتمند اغلب نشانی از زورگویی و سکمگری قدرتمندان بر علیه زعفا بود بازار توصیه, توصیه و رشوه رواج کامل داشت. این گفتیم که زورمندان با پرداخته از اینیه طراف و کل مبرزی را بر... به خدمت می برخی از برخی پرداخته با پرداخت روشه و یا زد و بند و یا توصیه از سوی بلند پایگان محکمه را به نفع موکلان خود پایان میدادند. حقوق زعفا و فقرارانی پامالی کند دیدیم گفتیم دینا. این گونه های و اجتماعی در روحیه حساس کسری تاثیر حرابان گذاشت و او را بر علیه آن همه فساد و پلیدی ها به تخیان باداشت و به طور خستگی نپذیری مدام در راه احیال حقوق زعفا و مبارزه با زورگویان و اصلاح جامعه از خرافات و پلیدی ها تلاش میکرد به همین دلیل بود که خودش می این هشده ماه هش ماهی که با قدرت تمام قضابت میکرد و خود ساده می بود. این هشده ماه روزهایی می بود که روان من در و جوش سختی بود و حال دیگری داشتم از جون از کار فرسوده نمی شدم از نبرد با ستم و ودی رزت می بردم خود کسری از آنیه تا دریافت بکادت دو سالی طول کشید سال اولش من درس کردم که کتابهایی هایی منتشر کرد منابریم خبر داریم این سال چجوری چگونه گذشته ولی سال دوم هزار و از هیچ خبری نداریم کثبی قلم رو کاغذ نذاشته در این و این جایی تعجب و تمام نوشته هاش بعد از سال 1300 تحی. از یادت روش چه کار میکرد به در این یک سال بدونشد به کمان من تصورم اینه که یک تا آروز عجیبی کثبی رو گرفته بوده میخواست برای زندگی آیندهش تصمیر بگیره و این گونه تصمیرها که ده تا اینکه که می تصمیر رو گرفت و ادامه داد راهش ادامه داد خب این مبارزات چگونه اتفاق می افتاد چگونه, چگونه پیش رفت می کرد پایه اچی جوری بود پایه مبارزات کسفری سه عامل بود سه انصر بود اخلاق گرایی خردگرایی و وحدت گرایی کسری مبارزاتش رو بر این عوامل بسته کرده بود دستگی به مذهب کرده خب اخلاق گرایی به طور کلی یک روشه اصلاحگرایانی نیست بیشتر روش کسانی که میخوان در جامعه امر به معروف بکنند و این در کلیهٔ ملایان روحانیان کشیشان و دیگران مسئولان دین مشترک دنبال خرد میگردند دنبال اخلاق میگردند هم خواهم رسید در اخلاق دیگران مداخله می کنند و کسفی در این تاریخ این همونه تصبر می کنند بنابراین من در سخنان آینزم خواهم این تاریخ که من دارم بزرگتون عرض کنم سال 1311 کسفی از دید فکری یک فقیه به تمام مناست یک ملایه به تمام مناست افکارش ملایه فقاحت پران هیهی هی که درش هست با ملایان مخالفه ولی مذهب شیعه و دین اسلام رو احترام قائله به مقدسات مد... مذهب شیعه و اسلام احترام قائله و هیچ کونه در, از این در این تاریخ رفتاری و ضد دین دین اسلام و مذهب شیعه در رو مشاهده نمی کرد. ولی خودش در کتاب ما چه می خواهیم می نویسد که در توده اخلاق در توده آلودگی های بسیار در میان میدیدم و اگر از هر, از هر آلودگی دیگر چشپوشی توانستیمی از بدی خوی ها و زشتی کدار ها نتوانستیمی بنابراین با اخلاق مبارزه میکنه با خویها و کدارها یعنی مداخله میکنه در امور مردم البته بنابراین این اخلاق جرائی رسدی رو به اونجا رحمون کرد که در کنار خردگرائی با مسائل مذهبشیه در افتاد میرسیم به این دوم پایه مبارزات بارزات کسبی خردگرائی بود خرگرایی اون که به عقل مراجعه میکنه هرکسی خرد با خردش میتونه قضاوت کنه میتونه بسنجه ولی اینکه ما خرد خودمون رو مرکز قرار بدیم پایه قرار بدیم باز مشکله بر این که خرد کامل نمیتونیم داشته باشیم همه چیز رو همگان دادن یک نفر نابسه و دکستانی خردگراه بود و عامل اساسی او با افتادن بین مذاهب و فرقه های دینی همین خردگراییش بود در مورد بیخردی شیعیان نمیزد در آینده بعدها نشته در اون تاریخ از کردم یکی از مدافعان مذهبش نیه بود نمیزد شیعیان دوازده نامی رو بر کردند که اینها امامان ماست در در جایی که امام به معنی پیشواست و یک کس زندهش پیشوا, پیشوا تواند بود از مرده چه پیشوایی تواند در اینکه این که میگویند دوازدهان آنها زنده است. و بیرون خواهد آمد دور از خرد است دور از آیین خداست یک کس هزار و سال زندگی نمی تواند بکند. بنابراین با خردش و همراهی دور از بکنم اخلاق اخلاق گرایی رسیده تا آنجا که با ادیان و مذاهب مخالفت کرده ثومین پایه یه فکر کسری وقتدکرایی بود کسری و رو اهمیت می داد وحدانیت کشور رو می خواست وحدانیت اقوام رو می خواست وحدانیت گفتار رو می خواست وحدانیت زبان رو می خواست. بنابراین قنابراین انتقاد هم باز در این وحضانیت هست ولی خب اون چه که کسی بود و بنده تصورم بر همین بود فکر که کسی دوران زمان قبل شاه و بعد زدنشاه رو در این دوران قبل زدنشاه در محیط آلوده و ایران ضعیفو و ایران بدبخت و بیفولی و بیماری و تحصوبات و خرافات زندگی می کرد و حسو جوش خورده قصه خورده بعد دوهه رزاشه ها رو دیده دوره نظم دوههه پیشفت بال تمام اشکالاتی که همین حکومت داشت ولی روم پیشفت بود آنگاه دوگه بل بشروی زمان بعد از خروج رزوشاه رو میبینه که مملکت اشغال شده به وسیع بیگانه و این در نتیجه گرفته که مملکت باید وحدت برقرار باشه هم مثل زمان رزوشاه قنابراین که از در این سپاهی مبارزات خودش رو شروع کرد در اینجا بخش بیستم گفتار ما تمام میشه و بنده از شما خدا حافظی میکنم تا بخش بیستو یکم و ادامه زندگانی و بویژه ترولات افکار کسوی رو سخن دیکو روزتن خوش